بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد بالله رب العالمین و صر الله و سیدنا و رسول الله و آله طیبین اللهم جميع المشتدین و الحمد بحثی که مقرر بوده روش نرخی در دلایل آیه ماندگی و لامران الله. از که تفصیل مختلفی برای آیه شده یه تفسیر ارجایش به دین الله دادن و همون آیه تفسیرم به مثل اخصا و وشم و وشم روی داد؟ و بعضی از عبارات این است جامعه بگیرید. جامع بگیریم تصور جامع به لازه فقهی و به لازه استزهار مشکله حالا من دیروز ارز که در مانونه موزه که امیشونی عبارات الان بیشتر تعمل شد شاید ایشان جامع نگرست حالا عباراتیشان مبهم لاغذ ایشان عبام دارد من دیروز ارز که ظاهری ایشانی که ایشون جامع گرفتن. حالا شاید خالی از ایبام نباشد چونه اگر دین الله گرفتیم، برای اینکه شامل اخصاب بشه مبنیست در اینکه که اثبات بشه افتداراً حرمت احساب، ولی حرمت اخصاب وقت کردن ثابت بشه اون را دین الله را بشه یا حرمت وصل سه مثل عبدالله مسعود با آیه تمسک میکرد برای حرمت وصل خب این حرمت وصل شن باید ثابت بشه این مو یا کلاگی سوشیدن این حرمت باید ثابت بشه تا الله رو بگیره اما اگر گفتیم نه اصلا مراده از تغییر خردالله تغییر ظاهری خلقت ایلاوی این دیگری میخواه دین الله بشه دو خود این آیه ثابت میشه حرامه یعنی اینکه که برس و شر کلاه بیس و شر یا مثلا کردن با خدا آیه با و عموم خدا آیه حرام میشه نیاز به اثبات نبنی ازا که ارز در جمعه های جامعه دین این دو تا تصور بکنن از برای فرمین خالی از اشکال نیست تصویر جامعه دین این دوتا خالی از اشکال نیست و ما دیروز خب بحثه دستید که برفض آیه را محبوب بکنیم برمان که ملاکه آلم ملاکه اثبات اطلاق لحظی برش میشی کرد البته اگر مراده از خلق الله دین الله باشه که لاعقل ما الان این تفسیر رو داریم در روات اهل بی با نظر از زعف اسناد این تفصیل فقیلن موجود اما ما معارض نداره این تفصیل معارض نداره حالا اگر قبول کردیم یه مقدار نقل کلام بر اون آیه میشه فعق وجه اکیل دین حنیف هم خسرتا لاقلتی خسران ناس علیه ها لا تبدیل در خلق الله لالکت دین الله لا قیه بیدین آیت شده که مراده از خلق الله در اونجا همین دین الله هست البته تعبیر به دین الله باید نمیکرد نمیکرد دین الله لا قیه لالکت دین الله لا قیه اینکه اگر ظاهر آیت تنصف شد خدمتون با ساعتون که در اینجا تعبیر و حنیف به خاطر پیدا شده همین که سابقه تاریخی داره در مکه که تهنافی یا حنید یا انصاری در قرآن مجمد 12 مورد حنید و انصاری به کار برده شده من فکر نمیکنم آیا صوت مکی باشه 6 موردش مکی نه 6 موردش مدنی فکر میکنم تعبیر کاربر مکی بس دارید تو مدینه باشه اون بعده تاریخیش باشه چون من ارسل راه های مختلفی هست برای شناس آیات مکی مدنی یکی از راههایی که به ذهن ما میاده این روی کسی قبل زمان، من از من در یا نه فرموندن مطلب من تو زهن نیست ما معتقدیم خود مفردات هم تأثیر داره. یعنی بعضی از مفردات بیرسا کوتاهی و بلندی آیات و تحرز و احکام و توبید و کذا؟ خود بلندی و خود مفردات که در آیات به کار برده شده در مکی و مدینی مدنی بودن محسر اصولاً لغت رایج در مدینه مثلاً از جهت لغتی بوده که به خاطر مقارب نزدیکی یعنی بودن و وجود فراوان یهود اصطلاحات فقهی و قانونی و اصطلاحات, اصطلاحات دینیش اینطوری این شریعتی به اصطلاح از شریعت بیشتر تا مکه چون در, در مکه مشکی بودن تحقیتوکی هم مسیحی ما سراغ داریم دیگه هیچ دین رو ما در مکه سراغ نداریم در مدینه هم الان تونجایی که معلومات ما نشون میده مسیحی نبودن اما یهود بنی قینقا و بنی نزیر و بنی قرائزه سه طایفه مهم یهود تو خود مدینه بودن قیل از که خارج مدینه اینکه که بعضی از اصطلاحات به نظر ما بعضی از محردات اینها فقط در مکه بودن و با اینکه این کتاب در کتاب مخصف از تاریخ حرب قبل از اصلاح تحقیقات خوبی راجعه به این قسمت ها داده به راجعه از تنم کتاب راجعه به سمون, راجع سمون چاپ بوده بعد از اون کتاب مستحا جواده چون در به اصلاح بین دریای سرخ تا حدود مکه و بعدها و از شمالن بالای مکه تا جنوب تازیه سرین های از سمود پیدا کردن سمود حدود صدر خورده قبل از اسلام مزمهل شدن حدود 800 سال قرن در اینجا وجود داشتن با فرهنگشون تمدنشون که در آیاتون که هم سمود الگین جا و صحب بلوار انصافا یک تمدن خوبی داشتن حدود 800 سال اخیرا، حدود دوازده هزار سنیوشه گلی از اینا پیدا شده که چهار هزار داشت خونده شده بقیه شنوز تلا قرار هم, هم جروشه این نشده برسه با اینها خیلی مطالب جدیدی و راجعه اتا به لازم لغوی یعنی خیلی از لغاتی رو که من در این کتاب دیدم خیلی شبیه به همین عربی فعیلی یعنی به عربی سی در مکه خصوص مدینه خیلی نیست اما مکه خیلی تأث از ادهه از الفاظ حتی در مصطبای مفردات اینا خاص مکه هستند که احتمالا شده از تأثیرات و بقایه های بوده احتمال قوی من دیدن یکی کسی مثلا فتره ما رو در قرآن زیاد استعمالش نداریم کل این مواد استعمالش هم مکیه تمام موارد و کلمه فترت الله به اینجا آمده ف عدی بن حکیم الدین حنیفان فترس الله لکی فتر الناس علیها کلمه فترت سری اضافه ال الله فقط منحصر در اینجا است در باان کلا لفظ فترس الله یک بار به کار برده شده مثلا عذاب الله داریم اما فترس اللہ همین یک جا به کار برده شده و بعضی احتمال داره من اینه که ایذ ظلہ عذاب الله این کلمه پیوند پر پر اصل این عوابی هم همین عذاب الهی است مرا اما به همون لغت یا حالا ابرانی قدیم بوده یا یه لغت خیلی قدیمی بوده که آرام بوده من احتمال بیشتر لغت سمودی باشه چون در اون لغت عواب عواب یعنی عذاب خیلی شبیه تلفظ عذاب هم هست مثلا معنی کسانی که لغات رو از حرکان نه این حروفی که ما زیرین خیلی میکنی عباب ایل که خداست در لغت مثل اسماعیل این ایل تو خداست عبابیل یعنی عذاب الله رو این زیده آیه مبارکه عباب ایل این که نوشنی از است و مفرد نظره این تصورات لغت عربی اصل کلمه لغت غیر عربی و من پر علیه این تیر این تیر چون این از اون زمین که ارتشی باشه آسمان بوده این رو به خدا نسبت میزن یک عذابی که در اختیار بشری نبوده مثل مثلا میگرد هواپی مواند کرد ایسی نیشنی یک چیزی که اختیار ارتش خارج بوده یا کلمه قصص الله در کل قرآن همین یک مورد استعمال شده علاقی نان الناس علیکان جای دیگری هم به کار برده نشده کل شغاقات فطره هم شعبات مکی هستند در مدینه بود. اینا بعید نیست الفاظی بوده که در مکه رایج بوده فاصله بین دو شهر حدود 450 460 70 کیلومتر بوده که الان همونجوره اون زمان حدود 60 شهر کیلومتر حساب میشه چون ده روز راه بوده هر روزی تقریبا 6 کیلومتر رسمی بین مکه و مدینه ده منزل ده تا حساب مرحله است به قول خودتون از این مرحله بارانداز ده منزل بوده ده بار انداز بوده که خود شاطرشartifactId میشه چیکارونام اجازه اجازه قابل مجازه اون وقت این فرهنگ و این لغتایی که حالا اون زیاد در آیات مکی و مدنی صحبت, صحبت, صحبت شده زیاد صحبت شده من میخوام اون سواده‌ای که گفتم که اونارو تفرقه کنه در خود آن احتمال دیدم بعضی از مفردات هم تاثیر داره خود مفرد مثلا توی زبان اهل مکه به کار برده میشده اما اون تعبیر در اهل مدینه ب کار برده نشده همهن به ذهن من میاد باد مکی باشه البته عرز میکنم طبق ین که من در مهاجه مفرس ن فعاد عبدالباغیز به نوشته ایشون نقل میکنم از این دوازده موردش در قرآن شیشداشه مکی نوشته شیشداشه مدنی نمیدونم من فکر میکنم مکی باشه بعید مدنی باشه ا آیاتی ست که مختلف فیهاست و یا آیاتی ست که هلا بعضیا فتن مثلا مدنی ست بنظر من بل باید نمیدانی مکی باشن تأبیر به محکی باشن. تأبیر مکی باشن به تأبیر مکی میخواه حالا واردون بحث نمیشین چون بحث دیگه هست در اینجا ما قبل از اینکه وارد واس خود آیه فطرات الله و تناسب این آیه با آیه تأبیر خبر الله بشه چون کلمه حنیف آمده و از طرف دیگه هم به دوتا آیه که تأبیر به آن به همین شده و تفسیر شده حنیفیت در بعضی از روایات ده همین ریش داشتن اعفاء النها یعنی به عبارت دیگر مجموعه آیاتی که در باب ریشه‌راشیششان شده دو تاستی که تقدیر خلق الله که هنوز ستیجه فروا نکردید یکی هم ملت ابراهیم حنیفه در روایات آمده که حنیفیت ابراهیم به این بوده به ده بوده این شریعت سرقومه مشهدی در اصل یکشان اخا اللهابی شده شدن به این دعای مجموعه تنصب شده چون در این آیه هم غیر از به اصطلاح تبدیل خبر الله مساله فقه و شکل دین حنیفان حالا ما یواش همین خارج داخل بشیم اینجا هم از بحث خارج بشیم بریم روی عنوان حنیفیت دین بیدی کا آیا عنوان حنیفیت همینطور که در روایات تثیر شده نیشه به معنایی گرفت که در ما نحنهی وارد شده یاد. در این جهت که من دسته مطرح پیشم مفرح کردم روایتی نقل شده در دو تا آیه ما این بحث رو داریم. یعنی بحث حنیف بودن رو و اچاره یکیش اون که مجموع آیات زبان مکه است در خود اونجا عنوان هنیفیت نداریم اما یه روایتی در زید اون آیه آمده که در اون آیه هنی در اون روایت هنیفیت تصیب شده به احاوله ها اون آیه در سوره بقره آیه سبه کونزه ازمزن و ایلتالا ابراهیم ربوهو به کلمات فهتنمهو آل امنی جائلو که لناسه امامو توش کلمه هنیفیت میتوانی شد نشه این در اینجا تفصیل شد در این کتاب به اسم تفصیل این معروفه در اول چفه پنجا از که الان در اینجا خدمت آل خوندم در چفه 59 ایشون دارن و لکن خود آیه که تحبیره به حنیفیت شده که مثلا مراد از این آیه حنیفیته در دید آیه یه داره اون آیه داره در این کتاب باز در همین جا در این کتاب جلد یک تصویر علیه ابراهیم در زیب این آیه در سویه نحن ثم ناوهی الیک اینجا دیگه تصویر حنتب ملت ابراهیم حنیفا این. اینجا هم داره چون اونجا هم داشت شعر در شکل دینه حنیفا اونجا داشت فتبتا لاحظه این در سن مقاوهی نائله انتبه ملت ابراهیم هنیفا نه در ویدش آمده که ده چیزه که اون هنیفیت این راجع به دو تا آیت مجموعا در اینجا شما با تفسیر ذهب شده حالا این آیه را تعرضی که آیه برای مصداق داره تا با اطلاق این با آیه اسلام و دیگرون خبر الله معل تن از بحث خارج بشیم برگردیم بود راجب به اینکه حنفیه چیه و ده الان ما روایتی در درس نداریم خوب دقت بکنید الان ما یک روایت مسند یک طریق صریح ساده واضحی روشنی در درس نداریم اما این مثل در تفصیح این یعنی کتابی که اسمش تفصیح علی آمده یعنی. این آمده اشاره هم داره این مثل از که در صوره بغره اینجور آمده عبارت علی ابن ابراهیم رو میخونن جنده یک طرفی من جانو و هم ماهور و ادبتال ابراهیم و همهور به کلمه آل یک بحثی رو من دیروزم اشاره کردم قادل این آل این به اسطلاح علیه ابراهیمه حالا که اون روش شاید توضیحشه ارزو کنه خوب مبتلاه الله ابتلاه ابراهیم ربه ها بکنه ما اون ابتلاهی اون اختبار و انتها نیست که خدا برای ازداد ابراهیم قرار ما مما اراهو فی نومه اونه که در خواب بیشن نشون دار که باز بخشش بپوشه. به ذره بلده فعصلا ما ابراهیم اتمامش این چونی بوده و ازمه علیه و سلمه این مراده این که انجام دازدن رو تصمیمه امر داری شد فلم ما ازمه و همه به ما امره الله قال الله تبارکه تعالی این نیجایق لننسه امامه آل ابراهیم من ضروریتی قال الله لا ینا احد. اهد قال لا ینا به اهد یا الالمی لا یکونو به اهدی همان من زاله. سمت انزله عليه حنیفیه. بعد از اون حنیفیت آمد. و حنیفیت وحی تهاره. من اگه یادم برسه بشه. و حیدر انزله فرمان ماجه کرده دینه حنیفان ایثارنده. کسی از این مجدو از زیر سوری روم، آل ایروم، آل سوری می‌دونم. و حنیفیت ونه پاکی. الان میدهی فیراهت هم خودتونه هستن صبحی میدونن صابعه میدونن خیلی مقایده به اینکه هرون خوبتون توی دلونا میشورن دعا بروینا و هیه حشره حشره فا اشیاءه ترمه حشره به منصف کارا با اختلاف در فرشی و هیه حشره فا اشیاءه در رزن اشیاء اختراع در فرشی خمستون فر رس و خمستون فر بلند و هم من لطیقه رفت و احضا شاره احضا از احض فرمانه کوتاه کردنه کوتاه کردنه سبیل و احفا و لحا رو کردن احفا اینه و تم و شر. خود تم در لغت وحنای سنگیم شدن و جمع شدن مثل تامه تامه مصیبت بزرگ در لغت حرف تامن. و که کسوم مثل نهایه نفسی نشد همه شرع جز رو میمیم چیدم چون در هر یک حل یک جزه اگر که مو از روی از پوست بلا بشه اینه سریدو کنن اینه اصطلاح هرم رو هم اما اگر خود مو رو مثلا با قیشی دو گیرن یا قص میگن که به اصطلاح ما به اصطلاح موزمان اگر به جهه تیر میگیم تیغ زد تیغ زدن با حلق زن. اما اگر با ماشین گرفت اون رو جز میگن یه نمیه کردن ما آقایی کسان دردان حلق مشرف میشن روحانی کاروان که این بعد از این ماشین های که خیلی ریز میزنه سفت میزنه چاست میزنه آیا اینا مجدی هر حلق هست یا نه خب زین بوتن نیست زین بوتن هست انصافش به لحاظه لغت مازید نوازد چون هر قیز هر چی باشه هر چی چون خودمون رو تصرفی میکنه او رو بهش جمع میگن یا میگه، بله تقصیر میگن و تماشهر پس تماشهر در اینجا من که ها می مون گذاشتم به قول اینجا گذاشتم اما یه نمیگه میگه تماشهر مراد جز و شهر بریدن مون یه حالا تحبازم اگر بشون اینجا نمی فهمی چیز درمه و سواک من خلال این دو دوتا محروض دندان هم سواک مابین روی ظاهر دندان رو پاک میکرد، و خلال هم مابین دندان ها چون دیگه این دوتا خیلی اعتقال شما درست هم هست یکی مابین دندان هایی که هم روی دندان ها یک عبارت عربی هست من من لازم من لازم من خشوته من چی من آخرش به نورم آمد خشکی امروز که باتن کلز نیجیه، یعنی مون گازنبارهون، امبار دستیه، دکتری دانم. گناه اگر انسان این دو تا خشکی کیک سبایی که خیلی آل بوشه، هم و شوشه نیاز به دانم پزشکی کنیم. و هم منطقی از بدام تحلیل و شر، اون هایی رو کوتاه کردن من بدن بدام و ختان خاتنه کردم، خاتنه در میان در روایات ما جزو سنان حتی قرار داده شده عملا هم دو نفر دو تایزه انجام میدادن یکی اولاد اسحاق یهود بودن یکی اولاد اسماعیل که عرب بودن اول از اسلام هم بودن نصارا انجام نمیدادند. من توضیحا از فهم کناره یکی از تحجیب قرآن همیشه اینه که شما نصارا حتی براییم و عبال انبیان میدونی چرا بردی از انجام حتی تو انجام ن یهودی ها انجام میدن مثل مسلمان یعنی از حضرت ابراهیم به دو پرزندی ایشان یکی اصحاب که یهودی ها از اون شرف اسحاق اصحاب پسر شیعهوب یعهوب اسمش اسرائیل بنی اسرائیل پرزندان یعب که دوازده پسرداش اصطلاح بنی اسرائیل از زمان یعقوب نه اسحاق. اما اصطلاح بنی اسرائیل از خود و اسماهیل که در مکه بود و الاخر قال يا حالتان و قلب مولى ازهار گرفتن گرسن ول من الجنابه قوس جنابه این اینجا این روایت داره اصلا تصریح نداره من در یه جایی پیدا کردم در کتاب احتجاج طبرسی چه بیا نویس پیدا کردم این دیگه نه در مصادر اهل سنت نه در روایات ما روایت موسع پیدا نکم توی از ارزوان تونجایی که زور مدرسی دیگر ما را استخدار همه کتابشون کرده باشیم در کتاب احتجاج تبرسی. تبرسی هم داره که مثلا بعضی از آداب پیش عرب بوده که بیشوها مثلا عجم یکی چند همین قسل جنابته این برایت هم قسل جنابته و عزد الراهی نسبت میده اگر این مطلب درست باشه سر این که در قرآن هم کیفیت میشه. چون در قرآن اجمالا کیفیت وزوی که آمده فرص وجود وجوه کن کیفیت تعموه هم آمده فرصی اما مسعید انتیباً پنسه به وجود کن و ایدی کن منه ها منه ها داره کیفیت تعموه کیفیت در قرآن آمده کیفیت قصد در قرآن نمیده این کنتم جلوبه هم خطه ها یک آیه راجع به جنوب عنوان یک آیه هم نستده به جنوبه قد این دوتا عنوان آمده اما اینکه بکنی چهار بکنید دست را چپ سرگرده هیچ کنید در قرآن نهاره این احتمال بسیار قد داره بوده که خود مسلمان های اول به همین مقدار میکنیدون جنوبا میفهمیدن قصل جنابت رو چون در میانه عرب قصل جنابت رو طبق این رو باید اصلش هم مالو میانه عرب نیزد می این قد این بعد انبیاء هسته ابراهیم سلام و سلام و سلام و ممالی برخواستی در جنابه و تبور و بلما این توهور سرطهش توهور را من تبقیم نمشه اصلا توهور این در لغت عبری است. این لغت اصلش درمه توهره در عربی توهر بوده به زن به معنی سهاره و پاکیه و تبور به معنی پاک کننده مفرد اصلا در لغت عرب یکی از چیزهایی که آمدن برای وز مرزشی اتفاده کنن همین بود چون دوارد حرف میمان با مختلف و با اوزان و با تش اوزان مختلف و تلخزهای مختلف اثبات میکن وزو و وزو که بعدها هم مثلا طبعا نشوغ و نشوغ نشوغ این انسان آبی چیزی رو داخل دماغش رو کنه نشوغ اون چیزی که داخل در زماغش میکنه توهور به معنای اتحارت تهور و انزل نامنه سماما انتهورا به معنای مایوت و به سهور و سهور سهور این سهری خورده هم اون قضایی که در سهر خورده میشه اون یه سهور از این فرق این دوست در ذهن موقع کون باشه و توهور و بلما فهاری خمسطان بدن به یه لحمتیه ات تاهره بعضی از اون داره از ظاهره علیتی جای بها ابراهیم خیلی تعبیر زیبایی داره لب تلمتون سخت اله یوم این نقص نشد یعنی این جزوه احکامی بود که در امت هسته ایسا آمد موسا آمد اسلام آمد دیگه تا روز قیامت تمام بشر ابراهیم نکاند عبال و باید بیم مرد عبال بشریه یه قوانین رو برای تحارت بدن و نظاقت بدن قرار داست که تا روز هم نرخ نشده و محرمان و محرمان خیلی کرده نه این داره که حنیفیت چون از کردن یکی از تخوصیر حنیف همی پا تاهه هم مثلا از آن هم هستن مثلا مثلا همین بحره ها که اسماعی هستن خیلی وسط و پاک و تمیز و مرکتن حنیثیت در مکه به معنی تهارت بوده از ملکه رای هنیفه تاهر هست این تهارت چی بوده؟ پنج شد در سر بوده پنج شد در بدن که این انسان ها با پاک و پاکیزه باشن پاکیزگی هی همین تحنف یعنی پاکیزه بودن خب این باید الان در کتاب حلیر مرحیم آمده جایی دیگری هم الان ما این تحبیه رو نداریم خیلی هم مطلب از واقعا ما, ما این ناره اوپنه زاره اوپنه بخییت الله پیدا بشه این مساده یه روایت بینید این میبینید الان ما در مساده موجود رو نداریم جز در تفسیر علیه ابن که ظاهرشم اونه که این کلمات از خود علیه ابن ما راجع به این تفسیر راجع به این تا صحبتی کردیم صحبت میشه که طولانی صحبت کردن از کردم چون جاشم واقعا نیست صحبت شد که این کتاب ولی وضع موجودش قطعاً مؤلف اون نمی‌شه علی نراعی باشه یک کتاب متفرده هم معلوم نیست حالا چرا بعضی از آیات رو انتخاب کرده بعضی رو نگفته خیلی از آیات رو نذاشته تا چه اونش هم ما الان نمی‌دونیم هدف مؤلف دقیقاً از این کتاب چی بوده چون بعضی هم آیاتی ولایت و قرائت نیست خیلی هست اما بعضی‌هاش نیست اون‌ها رو هم ما نمیدونیم این دقیقه چده زانر چیه کتابی بوده بله. و ایشان معدف کتاب اجمالاً چیزی در حدود ساله ۳50 یا6 چه. تقریبا هم دوره کلینی تقریبا ای چیزی این, این طبقه اگر بعد از کلینی که ۲سی و فاط ای شده ۳29 28. هر وقتی همن، این هم حال داشته باشه یکی از اجاوی که مسلم گرسن و کنید 28 یا 29 هست مثلا در تاریخ تناسول نجوم 24 می داشتن ماتیان نفر بگید اگر صنعه تناسول باشه 24 اگر با اون 28 و 29 هم می این ای هم که من همون سر درده بودم که مطلت کدومیش درسته این درسته یا اون درسته این به این کتاب رو محلف این کتاب در این زمان نوشته به قم آمده به کوفه رفته به بغداد رفته از مشایخ مختلف شیعه نقل کرده و در مشارق قوم رو درد کرده خصوص علی نقلانی درک نکرده حالا اینکه که دوزه اساتین هم هست و بقیه مشایخ مثل احمد ابن تو در کرده یا محمد ابن زیاد در کرده و ما مشاور کنیم نمی‌فهمیم شده یک وقتی آمده به گو که علی ابن ابراهیم فوت کرده بوده نمی‌فهمند استاد چون بعضیشون رابطهشون خیلی فاصله با علی بن ابراهیم نداره برحال ایشان علی بن ابراهیم رو درک کرده لکن کتاب علی بن ابراهیم که داد تفسیرش رو گرفتت کتابش هم از همون نقل کرده و اون راوی کتاب علی بن ابراهیم برای ایشون در اون اول سوره فاتحه که به استفاده ایشون اسم شخص رو برده یک جا اسمش رو برده دیگه اسمش زیاد نورده یک بار در این در کل در این دو جه در یک جا اسم راوی کتاب علی بن ابراهیم اون رو عنوانشین هر دست این حولفر عباس ابن محمد ابن قاسم بن همزته بینه موسر از نواهی موسر جعفر تا اونجایی که من خبر دارم آن از این برم نگاه بکنم این شخص یکی دو تا روایت در بعض آثار سجور این شخص عبالفرد عباسم محمد کلا ایشون شعن روایی نداره یعنی ایشون کلا در کتوب عربه ای که نداره اون که جای خودش در غیر کتب اربعی تکتو یک یا دوتا ا روایت اش نخد لاشرا کجا ن زمنم علیبن حاتم و راویش در بقیه مصادر هم کلا ایشون وجود نداره در کتوب رجال ما هم من همیشه حر سه محور داریم در کتب رجال ما هم اصلا اسمش برده نشده کتابیم که هتما نداشته تو فهارث هم نیست ایشون در سه مهور مهم ما که روایات و کتب رجال و فهارث باشه فقط تو بعد در روایی ها یکی یا دو تا یکی هم شد باشه. اسم ایشان آمده ما به لحاظه حدیثی هیچ و چی ایشان آشانی نداریم از ایشان کی هم؟ چی بارن؟ بله در کتب انصاب نام ایشان همه احتمالا سیر محترمی بوده سیر بزرگواری بوده ولی صادات هستن خیلی شعنیت اجتماعی دارن اهل فضل و کمال نیستن و شد از سر شنگ بوده مرد همون عنوان اجتماعیش کمک باش کرده و اسم شرس هم این اسم عبالفرد عباس ابن محمد در کتاب انصاب هست به نظر به نظر اینکه رو میاد به عنوان عباسیه از اشان نام میبنه شاید هم مثلا مادرش که میز بوده که او بو عباسیه این به هر حاضر شخصیات ساده ترتیمی انصاب انسان احبه این حالا خیلی شخصت بزرگی احساس میکنه این ها یا آقای محمد جزوه سادات محترم بوده معلف این کتاب کتاب تفسیر را از ایشان گرفته گزا در تیه کتاب هیچ وقتی گه گهت دستانی علیه نبران یک بار هم نمیگه حتی یک بار هم نمیگه همشی گفت و قال علیه نبرانی و علیه تمام با این آرگان این سرش هم همینه. از این عباسه به محمد گرفته که ایشون رو به لحاظ روانی نمیشن اینه الان آشناری بایشان با نداریم و ازا این نقطه رو خود پکت رو خوب مقدمات رو ما قیل داریم که حالا این کتاب رو نمیشناسیم ارزش اون نسخه این آهار هم نمیدونیم ولی این برسو دیگیم خیلی خوب بسیار آیا نسخه ای که ایشون از کتاب تفسیر عرضی نبیداریم داده یه نسخه کامل از صحیحه این هم عرض نمیشناسیم؟ از دیابی دقیقی از نسخه ایشان نداریم چه نسخه‌ای در اختیار ایشان بوده که این نسخه رو برای صاحب کتاب روایت کرده خیلی از دیابی دقیقی نداره اما می‌دونیم که نسخه ای رو نقل کرده می‌دونیم تفسیر علی ابن راهی وجود خارجی داشته نسخه در کرده برای مؤلف کتاب مؤلف کتاب قطعاً علی بن راهی نیست تا دهم مورد باشه مثلا یک جو یک آیه یک تفسیر رو از علی نبروی نعم میکنه بعد میاد بیروات از جاو هم آیه رو از بیروات مقایسه میکنه با هم حتی با غغی سه نمیکنه در مقایسه تا آخر چند تا کلمه از تفسیر علی نبروی نعم میکنه بعد میاد بیروات تعبیر جاو و بعد دیگه در تعبیر نبروی میگه امکان نداره که کار خود علی نبروی نیست که چون حالا من این سطحه ای که ارز کردن اون جهر کردن زیاد دارن میخواب من اونا رو دخونم ببینید در همین جهر یکی که ارزت من جایی هم هست جهر یکی درست من هست صفحه سی سال یکی روایت نیست آیه ایز ولا تن خضال ایمانه بعد توکیده ها ولا تکون اون تلیدی نفت از قسیده ها اون که درست میکرد خرابش و علی ابن ابراهیم که و سی از الجارود ان عبی جعفن علیه السلام تین افراد چند این دو سرس این رواید از الجارود زاره بعد میگه رجع رجعون یا رجع اله رواید که خیلی واضحه که تعلیم اون برای خودش هم چیزی میشه رج اون یا رجاء الرواته چند موردی همین کار میکنه. روایت که از جاده تصریح علی ابن درای بعد میگه رج اون یا رجاء صفحه 200 سدره از این یه اتفاق میشه. سدره خودش برای نمونه یا رجعی این سر به این کتاب حالا این کتاب به کتاب تفسیر علی بن ابراهیم و معلف کتاب رسیده از سر معلف کتاب موظمش رو از تفسیر علی ابراهیم لیکن خب در اصنا از کتاب های دیگه از روایات دیگه از مصادر دیگه ایشان نعقل میکنه مردار معتنابی از روایات عبدالجاود رو ایشان در اصناب میاده باید تا پروژه بودام و این که داشتن این نه چون اولش تفسیر علینم یه پیش‌فرضه البته چون حساب این که ای اون تحریبیه چیزی چیز نگرفته مشهذابه تحریف داره دیگه در چیز باشه در تحریبه مثلا همین آیه قرآن برتون خوندن همین آیه 20 در 89 ایشون آیه تو معنی اشغال دیگه خب اینجا میگه خب این کلمه در قرآن تكون امه هي اصحاب ثقيليه در صوره نمره من, من امه ما اربع. ما خلاص الله مش كدهش خیلی دیگه مرسله و اوم اليديه به ترها آیه قرآن. خیلی بعیده این این تعبیر که خیلی شان یه باید خب این آدی داخلش رو زیبایی مثلا این حالت‌هایی را هستن که که بله وقتی از کارمون راحت از دارکولوکی باز می‌کنند، تا دارکولوکی، وقتی خوب قبول دادن مرسال قبول نمی‌کنند. شاید یک این راجع به این دسته نه، لواشوش وارد بحث پس این تفسیر کتاب اسم تفسیر این که الان که واضح از این قبیل هم داره از این قبیل هم یکی مورد نداره نوارد بگن داره که رجع الکلام رجع رجع رجع اون الاروات علیه الاروات علیه مردان این رو به اصطلاح خلق کرده وقت در این که اجمالا تفسیر وجود داشته به احتمال بسیار بسیار قوی در کتاب مجموعان بیان که از علیه ادنه رو به احتمال بسیار بسیار من تطریق کلی نکردم ایشان از همون تفسیر نرمی کنه نه از این کتاب موجود فجمال در سعر و هم مردم سریم چابوز از تفسیر علیه ظاهرا همون کتاب اصلیه نه از این کتاب ظاهرا ظاهرا اینطور باشه و وقتی یک نقطهی در اینجا هست که با این تحلیلی که ما نرسلیم اون نقطه برایتون روشن شد در این کتاب موجود این طوره قال خوب مقتلاه الله به ما اراه و پیم اما در در کتاب سعد و این طور داریم به قال هو مقتلاه الله فقال العالم هو الذه اقتلاه الله به در سعد صعود سنت سنفاوز رحمه الله این طور داره فقال الانه یعنی به ارمان نگرات مرسن از تفسیر علیه نبرانی نه را بخونه از تفسیر علیه من احتمال اینکه این تفسیر نیستی شده خودشو واضحه احتمال بس نسخه متن نشندن هم نخوندن برای معنی که در فهد الصعوده با این اختلاف داره حالا من نمیخوام دیگه چیزی مثل مولانا حقی توی نسخه خالا نوشتن نسخه که من هست نوشتن این یک متن که در فهد الصعوده در کتاب مجوال بیان جلد 1 صفحه 203 پی در جلد این طور داره فروغ یعنی علیه السلام آن نهو مرتلاو به فی نومه اینجا مثلا داره بزرگ‌هبلدی، اونجا داره منزرهبلدی، منزرهبلدی، من زبرهبلدی، زبره نه، زبر به کس مانی مجبوره، زبر به خات ماسره، منزرهبلدی هی اسماعیل قبل عرب، این هم اشاره توی این اسناده فقط اومده بزرهبلدی هی. چون این نظام معروفی بوده یهودی ها که قوتن زبیه یا اصحاقه در روایات اسلامی ها زبیه اسماعیله این که اینجور داره به ذرق ولدیهی اسماعیل اول اشاره به اون اختلافی که بین یهود و بین عرب ها مطرح بود که اونی که امرالله و به ذرقی اصحاقه یا اسماعیله به قطعه تعبیر مرمومه با تحبیر مرمو مجموع بگیرم اختلاف مکنی داره من نمیخونم نوشتم تونسته خودم من حالا کن نمیخونم به یه مناسب و برسمان نیست وقتا تو تمام که تحبیرم بعد از این که پرویه ساده و همین شرحی که اجمالا که دیروز فلا کندم ده تا هنفیه ده آخرش این طور داره ذکر و علی یبن ابراهیم عبرالی مبنه هاشفی تفسیری بعد از این همه فرامویه ساده ذکره و علی یبن و ابراهیم ابن دید. به ذهن من میاد اجمالا متن مجموع بیان با متن اجمالا اجمالاً که ما نبازم با هم اختلافتن با متن مجموع م هم خلافن. پس به ذهن ما اینطور میاد که در اختیار مرموم سردسود مرموم ابن طاوز و مجموع بیان اون نسخه اصل موجود بوده این یک کتاب دیگه نیست این هم علت اختلاف پیش ما واضح شد معلومه کتاب نسخه عباس سیاه رو در اختیار داشته که ما این شخص درست نمی‌شناسیم. عباس دو محمد معروف عباس سیاه رو ما الان فعلا با اشان آشنای علمی نداریم. اینکه این پس روشن شد که این کتاب در روایت در حقیقت اگر الان تبدیل این که نسخه سعد سعود و نسخه مجوان در یکی باشه در حقیقت این روایت بوده این کلام علی بن ابراهیم نیست الان در این کتاب, کتاب کلام علی بن ابراهیمه در اون نسخه اصلی خود تفسیر لیکن چیزی که هست مرسله در نسخه تفسیر با عنوان رویه همه صادق آمده سند نداره پس که اله راجع به این مطلب ما سردی نداریم فترمه سلاح ترداریم شاید